سوره مبارکه قلم هم از سوره های مکی هست بسیاری معتقدند که سوره قلم دومین دو سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد و بعضی میگم دومین سوره سوره مزمل هست این سومین سو سوره هست بعضی چهارمین هم گفتن. علا ای حال الله عز در سوره ملک فرمود که تصرفات به دست الله است قدرت به دست الله است و برکات دهنده فقط الله است غیر از الله هیچ کسی نیست شریکی ندارد در این تصرفات و قدرت حال اینجا می فرماید مشرکین دوست دارند که شما مقداری نرمش نشون بدید و لو تدهنو فیدهنون شما کمکی کی بی بیایت از موضع تون تر بگید که بله این خدایان اگر خدا به اینها اختیاری بده میتونند به عنوان مثال ارز میکنند اینها قدرتی خودشون یک چیز قدرتی از خدا میگینند و بعد مشکل ما را حل میکنند یعنی یک کمکی از خود نرمش نشانده یا حد اقل بد نگو اینها را خدا را تعریف کن اینها را بد نگو اونها همین انتظار را داشتند پیش ابو طالب آمدند اموی رسول الله جامعه سران مکه که به برادر زادیت بگو دست بکشد از بد و بیراه گفتن خدا یا ما چیزی نگوید ما هم با کاری و کاری نداریم الله می فرمود لا ببین اطاعت نکنی ببینی که مسیر تبلیغ را بر اساس سیاست اونا پیش نبر بر اساس دستور ربات پیش ببر لذا الله می فرماید نون والقلم وما يسترون نون هم از متشابهات است گرچه بعضی گفتند نون به دوات بیاد دوات و قلم خدای تعالی هم دوات را ذکر کرده هم قلم را که اینها آلات علم هستند و ما يسترون اونچکه اینها منویسند یا وَمَا يَسْتُرُونَ كَسَائِنِ كَمِنْ يَسَن یعنی حفظه ملائکه‌ای که نویسنده هستند الحفظه الذين یکتبون اعمال بنی آدم اونها هم مراد هستند و ما یسترون علمای که والعلماء الذين یکتبون علوم الدین اونها مراد هستند لذا الله می فرماید والقلم وما يسترون قسم به و آنچه که من یعنی،, یعنی چه؟ یعنی علم گواه است قلم گواه است علماء گواه استن ملائک گواه است که چی؟ ما انت بنعمت ربکا بمجنون نیستی تو بنعمت ربت یعنی بفضل ربت دیوانی نیستی اونا میگن دیوانه تو دیوانی نیستی خدا سوگان دیاد می کند که همه اینها شاهدند همه اینها جزه گواهان هستند که شما لأنها تهمة ميزاناً لا يوجد. أما تبلغ ترابكوا. وإن لك لأجراً غير ممنون. الله من فرمهنا برأي شما أجر وفاداشي هست غير ممنون. كي إن أجر وفاداشي شما قط نميشي غير ممنون. يعني غير مقتوع. غير ممنون يعني غير مقتوع. أجري كي پاياً ندارد. سبحان الله. تا قيامت. این اجر برای رسول الله صلی الله علیہ وسلم جاری هست. هرچی انسانها نماز می‌خوانند، هرچی سجده می‌کنند، تلاوت می‌کنند، دعا می‌کنند، بر مسیر ایمان و توحید هستند. ربشون رب را میشناسند. همه اینها سوابشون بخشی پسوردی بر رسول الله که ایشون محسن هستند، محسن انسانیت، ایشون حادی هستند، ایشون راهنمای هستند، ایشون قربانی دادند و پیام خدا را ما. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم همارا شما بر اخلاق عظیمی هستید شما بر اخلاق عظیمی هستید ببینیم مراد از اخلاق چیه این اخلاقی که من و شما در عرف خودمون میگیم اخلاق این هم میتونه باشه، اما این یک بخشی از اون چیزی که آیه مراد گرفته. اخلاق فقط برخورد را نمیگویند، فقط حسن معاشات را نمیگویند، بلکه اینجا مراد از خلق یک فطرت سلیمه هست که الله عزوجل بر اون رسول الله را گذاشته و اون چی هست؟ فطرت دین هست. شما بر خلق عظیم هستید یعنی بر دین اسلام هستید. الله می‌بینی کسیر گفته و اینکه لالا خلق عظیم، ای علی دین الاسلام، ابن کسیر و تفسیر قرطبی گفته و اینکه خلق عظیم، ای علی دین عظیم من الاديان، ليس دین حب إلى الله تعالى ولا ارضى عنده منه چنان دینی که هیچ دین پیش خدا پسندیده تر نیست و محبوب تر نیست و مورد رضایت بیشتر خدا نیست از اون دین که اون دین اسلام باشد و تفسیر مذهلی میگه و هو دین الاسلام لذا خدا می فرماید که شما بر دین اسلام هستید ام المومنین عائشه رضی الله عنها را پرسیدن که اخلاق رسول الله چی بود؟ فرمود کان خلقه القرآن اخلاق رسول الله قرآن است یعنی چی؟ یعنی خلق همون دین هست تمام قرآن اخلاق رسول الله است ببین در قرآن چه مباحثی هست هم مباحث ایمانی و اعتقادی هست هم مباحث عملی هست عبادات طاعات عبادات هم معاملات هم سیاست و حکومت داری هم اخلاقیات هم حقوق لذا همه اینها در قرآن مجید هست همه اینها اخلاق رسول الله یعنی اخلاق رسول الله برچی بو بر دین اسلام فستبصر و بی بايكم المفتون انها ترى دیوانه میخوانند ان قریب تو بینی و انها هم خواهند دید که بايكم المفتون کدوم یک از شما دیوانه هستید آیا دیوانه اونها هستند که دنیا و آخرت خودشون رو ویران کردن خراب کردند؟ یا شما که یک هادی بزرگ هستید إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله همانا ربت بهتر میداند چه کسی گمراه شده از راه او وهو اعلم و هو اعلم بالمهتدین و اون رب بهتر میداند هدایت یافتگان را چه کسی بر هدایت هست لذا شما ای پیامبر فلا تطع المکذبین شما اطاعت نکنید از تکذیب کنندگان هر خواسته اونها دارد شما خواسته اونها را بجا نیار شما به سوی خاسته های اونها هیچ توجهی نکن چرا؟ چون اونها دوست دارند و لو تد و ود حینون آنها دوستدارن که لو تو شما نرمش نشان بدهید فیود آنها هم نرمش نشان بدهند اون هم نرمشنند اونها این رو دوستدارن که شما مقداری درباره خدایان اوها نرمش نشان بده سخت نگیر. تاکہ انہا هم نرم بشن. تشریحش را تفسیرش را ارز کردم کہ انہا آمدن چه انتظاری داشتن. گفتن فقط خدایان مارا بد و نگو. نگو که اینا نمی نگو که انہا مشکل کشا نیستن. نافع و زار نیستن. این طور نگو فقط. ولی الله عزوجل چی فرمود فلا تتعی المکذبین. لذا شما یک عالم یک عالم دین و یک کسی کی وارثه پیامبر هست شما هم حق نداری اجازه نداری روی مسائل دینی بیای مذاکره بکنی که مسائل دینی را یک مقداری نرمش نشون بدیم در تبلیغ دین در بیان دین بسیاری از احکام و دستورات خدا را بگیم که نرمترشون بکنیم نه خیر چنین چیزی هیچ کسی وقتی پیغمبر اجازه ندارد و خدا میگه فلا تو تی و کذبین من تو به طریق اولا من تو کاری نیستیم خیلی ها هستند میان به خاطر رضا رازی کردن حکام سلاطین میان بعضی از احکام رایت نرمتر بکنند توجیهشون بکنند و بعضی انتظار دارم میگن شما باید اینقدر جسور باشی شما علما شما انقدر باید باشید شما علماء شما اینقدر شهامت باید داشته باشید که تغییرات بیارید در أحكام فرعي وأحكام جديد ان بحث خود اشرا دارت اما مسائل اعتقادي و ايماني انها قابل تغيير نيسان لذا الله مفرماد فلا تطعي المكذبين ودو لو تدهنوا فيدهنون ولا تطعي كل حلا في مهين ان تخصيص بعد استعميم است يعني خداون مفرماد هر انساني كداري ان اوصاف است ان انسان خبیث النفس و هم اطاعت نکن، از اون حرف شنوی داشته نباش، ولا تو اطاعت نکن، هر انسان حلاف را ببینید گرچه این آیه شن نزولش و سبب نزولش به یک انسان خاصی اشاره دارد، اما این آیه می تواند امروز هم داشته باشد. امروزم بسیاری از انسان ها هستند که حلاف هستند حلاف یعنی فقط سوگن می خوده بی دروغ محین هیچ ارزشی نداره هم ما سخنچی خیلی هستند که مسلمانان را جان هم می لذا شما مسلمانان از اونها حرف شنوی داشته نباشید اصلش معروف است که این آیات در رابطه با ولید ابن مغیره هست. ولید ابن مغیره یکی از سرداران قریش و یکی از سر دشمنان رسول الله صلی الله علیه و لذا این ولید ابن مغیره چیکار کرد؟ این سعی کرد که با رسول الله مبارزه بکند و هر جا مزاهمتی ایجاب میکرد ابتدان میخونی ان شاء الله مقداری نرمش نشون داد قبلن و شما قبلا هم خواندید که افرایت الذی تولى واعطى و واکدا همین ولید بود مقدار جلوتر آمد از قرآن متاثر شد اما دوباره متوقف شد برگشت به عقب بعد از اون دشمن سرسخت رسول الله به رسول الله صاحر می گفت، مجنون می گفت، هر چی می گفت. الله عز در این آیات بعضی از صفات این مشرک را بیان می فرماید. این کسی, کسی بود که در رأس کفار مغز متفکر اونها، رهبر فکری اونها مسائل را اداره می کرد. الله عز و جل خودش را پودر کرد با این صفاتی که اینجا بیان شده تقریبا نه تا ده تا صفت برای این مشرک بیان شده الله می فرمد ولا تُطِعْ كل حلاف شما اطاعت نکن هر اون انسانی که حلاف هست ایک کسی الحلف خیلی سوگند می خورد. خیلی قسم می خورد. زیاد سوگند خوردن علامت خوبی نیست هر جا انسان اسم خدا را نیارت بر هر چیزی مهین مهین یعنی بی ارزش ارزشی ندارد هم مازین هم ماز یعنی تانیزن هی hey این تانی بزن اون تانی بزن به این مارک بزن اون یک مارکی بزن از کردم امروز هم هستن کسانی که مارک میزنن مؤمنین را هی hey تهمت میزنند سعی میکنن پاپوش درست کنند وقتی میبینند که مسلمانان از یک مرجعی خوب استفاده میکنه، هی سعی میکنه، او را بدنام بکنند، هی سعی میکنه وارد زندگی خصوصیش بشه، سعی سای که برایش چیزهای درست کنند، تهمتهای درست کنند، تا نمی تا مردم چکار بکنند، ازو بدبین بشند، مشایم بنمیم، مشائم بنمیم، مشای جا مبالغه ماشی هست، نمیم سخنچینی را میگه، یعنی بخکسترت سخنچینی می کند، خیلی هستند از سردمداران کفر و شرک که کارشون سخنچینی هست به هم انداختن هست مردم را به هم میاندازند قبائل را به هم میاندازند اقوام را به هم میاندازند لذا ولیدها در هر زمان وجود دارد من نائل خیر با این توطهها و با این حرفهایش چیکار می کند؟ من نائل خیر به کسرت جلو خیر را می گیرد من مبالغه مانع هست. سعی می کند که مردم به هیچ خیری نرسند معتد معتد یعنی از حد گذشته اعتدا تجاوز را میگند و سرکشی را می گویند گناهکار هر گناهی که ببتونه، چون خوف خدا نیست انجام میده بعضی از مردم هستند واقعا خوف خدا نیست هر گناهی که بگی اونها انجام میداد، مشروب میخورند زنا میکنند مال حرام مال رشوه مال ربا از هر جبیت بیاد فقط عثیم یعنی این عثیم هست این هیچ حد و مرزی در زندگی خودش ندارد که یک چیزی بگیم اینجا متوقف بشه عطلین عطل یعنی زبان و بعد از ذالک زنیم بعد از این زنیمم هست زنیم یعنی انگشتنما در شر و فساد وقتی که بگی شرور شهر کیه همه میدونه همونه در شر و فساد چیست؟ انگشت نما البته بعضی از اهل تفسیر گفتن زنیم یعنی ولد حرام بچه حرام میگم پدر ولید در همون زمان جاهلیت وقتی که ولید متولد شد چیزی نگفت هیچده ما بعد از پیدایشش بعد از ولادتش گفت این بچه مالمن نیست انکارش کرد بعضی به همین خاطر گفتن که این چی هست زنیم یعنی فرزند حرام هست بعضی ها نوشتند علماء که این همه استفات را که قرآن به ولید گفت همه را بررسی کردید من هستم حلاف محمهین حماز مشا من نایل خیر. اما همین آخری را خبر نداشت که اینجا قرآن به من گفته نطفه حرام هستم واقعا هستم رفت تحقیق کرد بررسی کرد آخر به این نتیجه رسید اینم درسته لذا الله عز و می فرماید این انسان پست و پست فترت را هرگز اطاعت نکن انکان کان مال و بنین بخاطر خاطر که داره مال و اولاد است مال مگه ازت میاره اولاد زیاد ازت میاره ازت چی چیز ازت میاره ایمان تقوی که اینها از اینها بدور است لذا این انسان بدبخت کسی از چرا قرآن این را این قدر تند گفته و حقش هم همین است چون این با قرآن مبارزه می خیلی از انسان ها هستند که امروز هم با قرآن مبارزه می کنند شب و روز بعضی کانال ها هستند شب و روز سعی می کنه آیات قرآن را ترجمه بکنند برای مردم به زبان فارسی بعد ایراد می گیرند تمسخر می کنند که اینها همه همو ولیدها هستند الله می فرماید اذا تطلع عليه آیاتنا هرگاه تلاوت می شود بر او آیات ما قال اساطير الاولین می گفت این افسانه های پیشینین الله می كلام کلام من را اینطور توهین میکنید سنسمه على الخرطوم یعنی حتما حتما یا ان ما داغ میکنیم وسم چی را می گند؟ داغ کردن را سوزندن را داغ میکنیم سر خرطومش می کنیم ببینی فرمودند فرمودند خورتوم ایشرا داغ میکنیم ببینین بینی نفرمودن چی فرمودن خورتوم که این اهانت بیشتری میشه. یعنی بینیش مثل خورتومی فیل هست کسی را که بینیش بد شکل باشه میگن که بینی نیست این خورتومه لذا الله عز وجل او را بیشتر اهانت کرد که سنه سمو علی الخورتوم اون خورتومی که تو داری ما را داغ میکنی ماناش چی بعضی گفتن این معنای مرادی هست، حقیقی نیست. یعنی ان قریب آرو ای با بدنامی نصیبش میشه. ببینید بینی در واقع یکی از مظاهر زیبایی انسان است. یک انسانی را که تعریف میکنند یکی از اون تعریف ها میگن بینی بسیار کشیده و خوبی داره زیبایی داره. بعضی ها که بینیشون، زیاد جالب نباشه میران عمل میکنن که بینی زیبا بشه پس بینی در واقع مظهر زیبایی هست خدا تعالی میگه که اون بینی اشرا ما داغ میکنیم کسی را وقتی که بخوای توهین بکنی بینی را ببر اون دیگه برای همیشه بدون بینی این بدترین توهین برایش هست بنا این معناش اینه که اون را بدنام میکنیم بعضی میگن نه این در جهنم هست خدای تعالی در جهنم بینی شرچکار میکند داغ میکند که سوخته و این بزرگترین علامت این فرد در بینی هست هر که میدونه این کیه بدتری شکل را و کریترین منظره را دارد اما بعضی میگن نه در همین دنیا این اتفاق افتاد ولید ولید ابن مغیره در جنگ بدر شریک بود در جنگ بدر این کشته نشد اما یکی از صحابه ضربه زد بینیش بینیش ضربه خورد تا روزی که زنده بود همون ضربه روی بینی بود به بی این خاطر بعضی گفته اون مراد است و بعد الله تعالی می فرمه این بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه ببینید این بیچاره مغرور مال شد چرا؟ چونکه اولاد داشت مال داشت خداوند یک مثالی بیان می فرماید که در این مثال مشخص میشه که مال یک شبه میره که هیچ کسی مغرور مالش نشه که این مال یک شبه شب از بین میره گم میشه خیلی ها بود مالدار بودند شب خوابیدن صبح فقیر شدند لذا الله تعالیٰ می فرمد مغرور مال هستی ببین مال را اینا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه همانا ما آزمودیم انها را امتحان کردیم همانگونه که امتحان کردیم اصحاب الجنه را صاحبان باغ را این باغی بود در سنعائی یمن این باغی مال یکی از انسانهای صالح بود آدم صالحی بود آدمی نیکوکاری بود و این باغ را همیشه وقتی که محصولات باغ می رسید میوه باغ می رسید چکار می می روزی که وقت چینی بود همه فقرا هم باخبر می شدن مطلع می شدن که این باغش الان وقتی چینیش رسیده همه جمع می شدن هرچی که محصولات باغ بود اینا رو سه قسمت میکرد یک قسمتی را به فقرا میداد یک قسمت از میوها را برای اهل عیال برای زن و به چشمی آورد و یک قسمتی از این میوها را چیکار میکرد مفروخت می و حزینه میکرد برای خود باغ و نیاز خودش پیدا میشد یک قسمت یعنی یک سوم را میفروخت یک سوم را میخورد یک سوم را به فقرا میداد باغش روز بروز به برکت این ایثار و به برکت این صفت خوب روز بروز آبادتر می شد، بهتر می شد، رونق بیشتر می گرفت تا اینکه ایشون وفات کرد. بعد از اینکه وفات کرد، بچه هایش دچار انحراف شدند، بچه هایش غمراه شدند، راه پدر را که راه نیکی بود، و ایمان و توحید بود گذاشتند یک بچهی که متوسط بود پسر وسطی اون بهتر بود اما دو تای دیگه نه حتی که راه شرک را هم گرفتند با خدا شریک می گردند. دو چیز این ها داشتند یکی شرک کی بخت وقتی که اینها رفتن باغ، گفتن با خودشون مشوره کردن، گفتن پدر دیوانه بوده که باغ مال خودت هست میواره میده به مردم، به فقرا اونا برن خودشون برای خودشون کار بکنن. ما چه کار میکنیم؟ ما از این به بعد یک دانه میوه به کسی نمیدیم. مال خودمون هست، خودمون نیاز داریم. گفتن خب چه کار بکنیم؟ مردم جمع میشن. گفتن تنها رای حلش اینه که وقت سهر بریم. وقتی سهر بریم میوه باقیمون را بچینیم اون وقت کسی نیست مردم دیر میآیند تا وقتی که افه بالا میزنه ما بر میخونه خونه آمدیم. وقتی که مردم بیایند برای میوه می بینه هیچ که نیست تمام شده اونا دست خالی بر میگردن بالاخره ما هم به میوه می رسیم به مال خوبی دسترسی پیدا میکنیم و مالمون را به کسی نمیدهیم. اینا با هم مشوره کردن. اون برادر وسطی این چیزهای بهش گفت از آیا معلوم میشه این هم گفت که لولا تسبحون شما چرا به خدا شریک میگیرید چرا خدا را از شرکا پاک نمیدانید بالاخره اینها توجه نکردند به موعظه او تا اینکه رفتن سر, سر صبح وقت سحر نیمه شب بود وقت سحر بلند شدند یکی چکار کرد بغیر بیدار که گفت مگه نمیخواید میوه باقیتون را بچینید. بریم که داره روز میشه مردم بیدار میشن بریم زودتر بریم. رفتند خدای عزواجل در همین شب آفتی برای باق آورد که این آفت کلم باق را سوزاند هیچ اثری از نه درخت بود و نه میوه بود. وقتی که رفتند باغ خودشون در باق را باز کردن دیدن که اینجا هیچ چی نیست. اینجا فقط از کنم که زباله هست فقط آشغال هست چیزی دیگه نیست اول گفته حتما راه را اشتباه مدیم این ما نیست از بس که باغ ویران شده بود ولی بعد نگاه کردن راست و چپ را دیدن نه این باغ ما است این فلان همسایه اون فلان هم سایه این شرق و این غرب و این شمال و این جنوب بعدا متوجه شدن که این گرفت الهی هست خداوند ما را معاخذ کرده ما نباید چی می کردیم نباید که هم با خدا شریک می گرفتیم و نباید جلوی فقرائیمون را می گرفتیم. اینجا بود که توبه کردن گفتن خدای ما اشتباه کردیم خدا هم به اونها مولتی داد چون پدرشون صالح بود فرزندان پدران صالح زایه نمیشن اگر مدتی گمراه بشند بالاخره چی می دوباره ساله میشن دوباره توبه میکنن. لذا الله تعالی اون داستان را در این آیه شریفه بیان فرموده. الله می‌فرماید: این نبالونا هم کما بلونا اصحاب الجنة همانا ما از مودیم را امتحان کردیم آنها را کما بلونا همان که امتحان کردیم اصحاب الجنة صاحبان باغ اذ اقسم زمانی که آنها باهم سوگند یاد کردند لیصرم نها مصبحین حتما حتما صارم میگوین میوچینی را لا یسرمنها لا یسرمن دوت تاکید است به معنی سوگند همیت سوگند به خدا حتما حتما اون را اون را کنن میچینن صبح. مصبحین صبحان. صبح یعنی سر صبح بری میوار میچینیم ولا یستسنون ولا يستثنون, يستثنون استثناء کردن بعضی از مفسرین نوشتن یعنی ان الله نگفتند اما بسیاری از مفسرین گفتند نه ولا یستثنون یعنی پاکی خدا بیان نکردند قال ابو صالح کان استثناء قولهم سبحان الله ربنا سبحان الله نه گفتند چرا چونکه اعتقادشون در اعتقادشون خلل آمده بود بعضی اینو گفتند ولا یستثنون یعنی ولا یسبحون بقرینه لا لا تسبحون بعدا می اون برادر مواسطی اونارو ملامت کرد من نگفتم چرا لولا تسبحون چرا تسبیح نمیگوید بعضی میگن نه استثناء اونها سبحان الله بود ما مثلا یک کاری میخوایم بکنیم میگه من این کار رو میکنم الله در اون شریعت به جای ان شاء میگفتن سبحان الله من این کار رو میکنم سبحان الله ربنا یعنی توفیق الله پاک علی ای حال اللهمی فرماید و لا يستثنون انها استثنان کردن فطعف علیها طائف من ربک و هم نائمون اللهمی فرماید تواف کرد دور زد چرخید طائفی طائفی یعنی یک چرخندهی طائفون این تنوینش برای تعظیم است طائف مراد عذاب است یعنی یک عذاب بزرگی از جانب ربت عذابی آمد و هم نائمون در حالی که همه چی بودن خواب بودن باغ را عذاب گرفت باغ را ویران کرد فاصبحت که سریم این باغ شد مثل سریم سریم میگن میوه, میوه که چیده شدن فتناد و مصبحین اینا خبر ندارن از دنیا فتناد و همدیگر را صدا زدن مصبحین صبح گاهان سر صبح بلند شدند و همدیگر را صدا زدن انق علا حرث کم این که صبح کنی بر کشتتون بر کشاورزیتون باغ و کشاورزی که داری صبح اونجا باید باشیم این کنتم ساریمین اگر می خواهید میوار بچینید فانطلقو اللہ می فرماید انهار رفتند و هم یتخافتون در حالی که می ترسیدند از می ترسیدند الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين این که داخل نشود بر آنها امروز هیچ مسکینی هیچ فقیری گه مسکینیت پیش ما ما راحت می شیم گه بر خورد میکنیم دوست داریم هیچ گدایی نیت مزاحم نشید در حالی که نار رحمت هستند انسان وقتی که صدقی را بهش میده بلای دف میشه لذا از وجود مسکین از حضور مسکین سر تون، دم درتون دم مغازهیتون، هیچ وقت ناراحت نشو هرچی در توانت هست لذا اونها ناراحت بودن الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين انك داخل نشود بر آنان امروز هیچ مسکینی و غدو على حرد قادرین الله می فرماید ان صبح کردند به گمان خودشان على حر دن حرد حرد به معنی منع بر منع مساکین قادري قادر بودند فکر میکردند دیگه ما میتونیم مساکین را جلوگیری بکنیم نظری که مسکین بیان اما وقتی که رفتند ابتدا گفتند ما گم شدیم این کجاست فلما را اوها زمانی که هم باغ را دیدن قالون اینا لضالون گفتند همانا ما گم شدیم گم شدیم جای دیگه آمدیم باغی ما این نیست اما بعدا وقتی که نگاه کردن بررسی کردن دیدن نه بل نحن محرومون بلکه واقعیتش اینه که ما محروم شدیم خدا از ما این نعمت را گرفت هیچ وقت انسان رب خودش را ناسپاسی نکند چون اگر ناسپاسی و ناشکری بکند کفران نعمت بکند معصیت بکند خدا را بران یک شب نعمت ازش گرفته میشه قال اوسطهم برادر وسطی گفت الم اقول لكم لولا تسبحون آیا من نگفتم به شما چرا شما تسبیح نمیگویید یعنی چرا تو اعمالت شرک دارید؟ لولا تسبحون یعنی لولا تنزهون الله عن الشركاء چرا خدا را از شرک پاک نمیدانید آنها چه جواب دادند قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين گفتم پاک هست رب ما همانا ما بودیم ظالمی ما ظلم کردیم ما بر خود ستم کردیم جور کردیم اشتباه کردیم فاقبل بعضهم على بعضی تلاومون الله می فرماید رو برو شدند یعنی متوجه هم دیگه شدند بعضی بعضی دیگر رم ملامت می اون می گفت گناه توه اون می تقصیر نه توه این مش، مشوره تو دادی اون گفت تو گفتی هم دیگر را چی ملاومت میکردند قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين بعدا اقرار كردند ای وای بر ما ای حسره و افسوس بر ما ما سرکش بودیم ما طغیان كرديم، کردیم سرکشی کردیم اما الان توبه میکنیم توبه که میکنیم امید داریم رب این نعمتها را برگرداند خداوند دوباره به ما رجوع کند عصا ربنا ان یبدلنا خيرا منها ما به رب توقع داریم و وعده رب من همین هست ما توقع داریم امید داریم که رب ما ان یبدلنا خیرم منها تبدیل کند برای ما بهتر از اینها یعنی خدا بهتر از این باغ به ما بده انا الى ربنا راغبون چونکه ما از این بعد به سوی پروردگارمون رغبت میکنیم. پس ببینید عزیزان بعد از اینکه این داستان را الله عز به پایان بپایان رساندن میفرمان کذالک العذاب. اینجا التفات به سوی اهل مکه است. ای اهل مکه شما که مست قدرت هستید مغرور مال و منال خود هستید شما بدونید که یک شب از دست شما میره کذالک العذاب عذاب این جور شما مردم عزیز با چشمان خودتون دیدید که بسیاری از سلطنت های دنیا بسیاری از پادشایی های دنیا یک شب از دست پادشان رفته یک شب کودتا شده همه تاج و تخت و قدرت و اون ریاست خودش را از دست داده بعد افتاده تو گوشه زندان لذا الله وقتی که بیارد کذالی کالعذاب عذاب این طور می آید ولی خدای تعالی می این عذاب عذابی نیست این سبک هست والعذاب الاخره اکبر البته که عذاب آخرت بزرگتر است. هست لو كانو يعلمون این لو كانو يعلمون دوتا ترکیب داره یا دوتا تفسیر کاش مردم می لو لوی تمني هست کاش مردم میدانستند. و دوم اینکه که لو لو شرطی هست لو کانو یعلمون لا شرکونه به اگر می با خدا کسی را شریک نمی گرفتند بالاخره الله عزوجل در این آیات بیان فرمود که هر کسی که به مال و منالش می نازد و از این طریق شرک می کند به خدا و دستورات خدا پشت می دهد بدوند که یک روزه و یک شبه خدای تعالی نعمتها را از انسانها می گیرد. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بعد از این اللہ عز و جل تا اینجا تخویف بیان فرمود حال بعد از این تبشیر بیان می فرمود بشارت برای اهل تقوی الله می فرمود اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ همانا برای متقیان هست برای اهل ایمان هست چند بار خدمت شما عرض کردم که هر جا ورود بهشت معلق شده با تقوا اگر می خواهیم به بهشت بریم به غیر از خدا ترسی و تقوا دیگر راهی برای ما نیست برای متقین نزد پروردگارشون چی هست جنات النعیم اون جنات و باغاتی که سرآپا چی هستند نعمت هستند اف نجعل المسلمین کل مجرمین خدا می فرمائد. آیا ما قرار می دهیم؟ مسلمانان را کسانی که منقادند، طابعند، فرمانبرند، آیا اونها را مثل مجرمین قرار می دهیم؟ نه خیر، مجرمین جایشون جای دیگه هست، مسلمین و منقادین و متقین جایشون جای دیگه هست. ما لکم کیف تحكمون چی شده شما را؟ شما چگونه داوری میکنید کنید؟ چگونه فیصله می کنید؟ را هر دور مثل هم میدونید ام لکم کتاب و فیه تدرسون چونکه مشرکین خیلی مغرور بودند می ما ما دین ابراهیمی هستیم ما ناجی هستیم قیامتی نیست اگر قیامتی باشد ما وزیمان بهتر خواهد بود خدا می فرمائی ام کتاب و فیه تدرسون شما اینها را بر اساس چه دلیلی میگید دلیل اغلی داری یا نقلی آئی بر شما کتابی است که فیه تدرسون درام ام در آن کتاب می که ان لکم فیهی لما تخیارون برای شما درون بهشت باشه هرچی که اختیار می کنی هرچی که بخوی املکم ایمان علینا بالغه تا یوم القیامه یا اینکه خداوند در همین زاجر بیند یعنی کسی اینطور مثل شما دلش جنب باشد خاطرش جنب باشد که او با خدا عطمان عهدی بسته یا خدا با او وعدهی داده یا در کتاب نوشته که او نجات میابد ام ایمانون یا برای شما تعهدی هست پیمانی هست علینا برما که این پیمان برسد تا روز قیامت یعنی تا روز قیامت ما با شما هیچ کار داشته باشیم. بالغتون الیوم القیامة چنان پیمانی هست ان لکم لما تحکمون که همان برای شما باشد آن چیزی که شما خودتون حکم می یعنی پیمان حتما بستیم تا روز قیامت که روز قیامت به شما بهشت بدیم چون نه خودشون حکم به می میکردن سلهم بپرس از اینها ای محمد صلی علیه و وسلم ایهم بذارک زعیم کدوم یک زنها نسبت به این چیزی که دیا می کند هست زعیم یعنی زامن هست شما چی داری می شما فکر میکنید بهش مال شماست کیم به ضمانت میکنه که بهش مال شما باشه ام لهم شرکا آیه برای اونها شر... شریکانی هست چنان شریکایی که اونها اینها رو به بهشت ببرند فلیاتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین بیارند شرکای خودشون را اگر راست میگویند اگر راست میگویند شرکای خودشون را بیاورند یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون بعد ازين خداوند عز وجل از شدت اون روز بیان میفرمايد چه روز سختی که در اون روز چنان سخت است که يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق معنیش چیه یک تفسیری از ابن عباس رضي الله عنهما منقول است که این کنایه از شدت و سختی هست ببینید وقتی که شما جای میرید و مقدار سختی جلو انسان بشه انسان چکار میکنه لباسش را بالا میزند مثلا خطر افتادن باشه خطر گلو لای باشه خطر لیز خوردن باشه چکار میکنه لباسش را بالا میزنه که ساقش چی میشه ظاهر زا... میشه پس این کشف ساق کنایه از شدت هست سخت میشه مسئله بس این تفسیر از ابن عباس منقوله که یوم یکشف عن ساک یعنی روزی که ساق برهنه میشه یعنی سخت میشه و یدعون الى سجود مردم سوی سجده دعوت داده میشوند فلا او نمیتونه سجده بکنن اما بقیه مفسران میگه این بر معنای اصلی و حقیقی خودش است. برمانه چیه؟ اصلی و حقیقی معنی اصلی و حقیقی اینه که در روز قیامت در حدیث می آید حدیث مسلم هست حدیث دیگه هم هست در روز قیامت الله عز و جل می فرماید که هر یکی از شما هر کسی را که عبادت کرده با معبود خودش بره به طرف جهنم تمام کسانی که معبودان باطل داشتند و اون معبودان راضی به عبادت بودند آبد و معبود همه میرن تو جهنم می سوزند می غیر از کسانی که خدا را عبادت می بقیه همه می روند فقط در اون میدان میمانند کسانی که آبد خدا بودند بقیه می تو جهنم بعد خدای از و میآید. می به شکلی که خدا را اون شکل برای این معامینین معلوم و معروف نیست. به اون شکل خودش خودش را ظاهر می کند. می من رب به شما هستم سجد کنید. میگوند نه تو رب ما نیستی نمیشناسند. بعد خدای از زواجل به شکلی که او را به ظاهر ظاهر کشف ساق می کند. ساق خودش را نشان میده ظاهر می کند. همه میشهناند همه به سجده میفتند به غیر از منافقین که کمرشون تخته شده و نمیتونن خودشون را دله بکنن به جای اینکه بیفتند به سجده بر،, بر پشت میفتند توفیق سجده از اونها چی میشه؟ صلب میشه خب در حدیث اینطور آمده حال کشف ساق به من حقیقیه اما مراد چیه؟ الله بهتر می همین اندازه که در احادیث آمده ما ذکر می‌کنیم بیشتر مراد و معنا را الله بهتر می‌داند بل معلوم میشه که این چیزی است که انسان ها با این چیز خدایشون را مشناسم معبود حقیقی را لذا الله می فرماید یوم یکشف عن ساق روزی که ساق ظاهر میشه برهن میشه و يدعون الى السجود و این مشرکان كافران فرا خاند میشون به سوی سجده خدا فلا يستطيعون انها لمتوان خدا را سجده بکنن خاشعتا ابصارهم چشمایشون پایین افتاده ترحقهم ذله ذلت و خاریه نهارات سهت پوشش قرار میدهد، و قد کانو یدعون الى السجود، چرا نمیتونه خدا را سجده بکنند، ایلت الله می میفرماید، همانا اینها در دنیا فرا خانده به سوی سجده، و هم سالمون، در اون دنیا سالم بودن، تندرست بودن، اما اونجا سجده نکردن، اینجا هم توفیق سجده نخواهند داشت، فذرني و يكذب بهذا الحديث الله فرمى انجام زجر می فرماید سرزنش می فرماید چون اونا می گفتند چرا عذاب نمیاد اللهم يفرح فذرني مر بغزار ومن يكذب بهذا الحديث هر کسی کی انسخان را تقذیب میکند يعني هر کسی کی كس مسئله قیامت را انکار میکند و قیامت را تقذیب میکند مر با انها بغزار سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ان قريب تدريجا تدريجا من انها را میبرن بسوئی عذاب استدراج را قبلا توزید آدم استدراج اینه که کسانی خدا را نافرمانی میکنند ولی خدای عزوجل عذابشون نمیده هنوز مهلتشون میده هنوز به پیش میره تا که تدریجا تدریجا اینا به اوج تغیان کسی طغیانگری برسن لذا الله میفرمايت تدریجا اونها را به پیش می برم من حیث لا یعلمون از اون جهتی که نمیدانند و املی لهم و انهر مهلت میدهم در دنیا انکیدمتین اما انتقام من سخت کید به معنی جهز فالکیدو من الله الانتقام اما برای کفار انتقام به الانعام انعام خدا چطور انتقام میگیره به اونها بیشتر نعمت میده بیشتر میده تا آخر به بالاترین حد کفر و غفلت برسند بله این کیدی متین و باز در آخر الله عز و بر حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ام تسألوهم اجرا آیا شما از انها پاداش می خواهید اجر می خواهید که فهم من مغرم مسقلون انها از توان زیر بار یعنی از توان اون که شما می خواهید زیر بار ام عندهم الغیب یا اینکه نزدی انها غیب هست فهم یکتبون انها ان را من را فصبر لذا یعنی از انها هیچ کدوم نیست ای محمد صلی الله علیہ وسلم تو بخاطر خدا انها را معزم میکنی انها را شاد میکنی راه نمائی میکنی اما انها نمیپذیرند که نمیپذیرند شما صبر کن فصبر تسلیست نارحت نشو سابركن ولا لحكم ربك بحكم پروردگارت ولا تكن كصاحب الحوت مثل صاحب ماهي نباش يعني مثل سيدنا يونس نباش كي حضرت يونس بتنگ آمد از دست مشرکان از نادا وهو مقزوم زماني كي خدا را فرياد زد در حالي كي مقزوم ای مملوون غیزن پر از غیز بود اصابانی بود یونس علیه صلی اما از،, از غم و از اندوه پر بود درون ماهی خدا را فریاد زد. الله می لولا ان تداركه نعمت من ربه اگر او را در نمی یافت احسان یزانی یا رب نے بت یزانی رب, رب لانه بالعرب ان داخت بش در صحرا هو مذموم در حالی که مضموم بود یعنی ملیم بود اما چون که نعمت پروردگار او را دریافت فج تبا او خداوند او را انتخاب کرد برگزید ربه رب فجعله من الصالحين اون رب خداوند از صالحین قرار داد صالحین یعنی ال فی الصلاح از اون بندگانی که در صلاح و نیکی به درجه کمال رسیدند به این یعصمه به این صورت که خدا حتا او را معصوم قرار داد از اینکه ترک اولا بکند و این یکاد اللذین کفروا در پایان خداوند عز و جل سرزنش می کفار را که چگونه رسول الله صلی الله علیه وسلم را به گمان خودشون بیم می‌دادند، دادند زهر چشم می دادند و این, این مخففه من المسقله هست انه همانا نزدیک کسانی که کفر کردند لیزلقونک بی ابصارهم تا که به وسیله چشمهای خودشان شما را بلغزانند. شما را چیکار بکنند بلغزانند ای لیخوفونک ببینید منظور چیه دو تا تفسیر عرض میکنم یکی اینه که اینها همه شما را بیم میدهند زهر چشم می میدهند عصبانی عصبانی نگاه میکنند تا اینکه شما بترسید خیلی ها هستند که اهل توحید را میترسونند گاهی به وسیله زهر چش می به وسیله نگاه کردنی گای به وسیله تلفنی هزاری چنان میکنیم چنین میکنیم لذا الله می اینها میخواهند شما را بترسانند با اون چشم خیره که به شما نگاه میکنند چرا لسممی او ذکر وقتی که قرآن را میشنوند قرآن را تحمل نمیکنند. لذا میخوان شما را بیم بدهند و بعضی گفتند که منظور از چشم اون چشم. نظر هست مراد بسیاری از افراد هستن که خدای تعالی این قدرت را بهشون داده که چشمشون یک ارز کنم قدرت خاصی دارد این حق است در حدیث آمده که العین و حق بعضی افراد هستن که کسانی را با چشم نگاه میکنند و چشمی زنند به اونها میبینه اون طرف آسیبی میبینند میگوین کسی بود در مکه که گاهی بلخصوص گروس نمیشد شکمش خالی میشد و چیزی را با چشم نگاه میکرد مثلا یه روزی شطوری آمد اینم خیلی گروس نبود شطور چاغ و فربی بود گفت عجب شطریه تا که این را گفت شطور افتاد مرد در مناطق ما هم بعضی مردم هستن خدای تعالی بعضی را امتحانان، چنین قدرتی داده قدرت چشم داده و این قابل انکار نیست مردم منطقه این را تجربه کرده میدونن هست لذا این فرد را آوردن که چشم نظری اندازت بر آن حضرت صلی الله علیہ وسلم و به آن حضرت آسیب برساند اما غافل از اینکه که والله یعصیمو من الناس لذا الله مفرماد نزدیک هست کساني که كف کردن لَيُزْلِقُونَكَ بِلْأَغْزَانَ شُمَارَبَ بَا چشمان خودشون یعنی شُمَارَبَ بَا چشم زربه بزنن لما سمعوا الذكر وقت لگه قرآن را شنیدن اما ان را تفسير اول راجع هست بشتر هم را گفتن که تهديد مراد است وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ هم ايزاء تهدید کردن و هم ایزای قولی و یقولون انه لمجنون میگویند این پیغمبر چی هست علی یعظو مجنون هست در حالی که و ما هو ایلا ذکر للعالمین این قرآن نیست این کلام نیست مگر این پندی هست اندرزی هست برای عالمیان چرا از این قرآن ناراحت هستند بیاین از پندی این قرآن استفاده بکنند و قرآن را در زندگی خودشون احیا و بیاده بکنند صدق الله العظیم